آنا، شنبه 17 آگست 2013 عصر از خودم به خاطر گریه کردن متنفرم، رقتانگیزه انگیزه، احساس میکنم تو این چند هفته اخیر از پا در اومدم و تام و من به ناچار با هم دیگه قیل و قال لاشتیم. به خاطر ریچل به نظرم ناگذیر بود، به خاطر اون یادداشت خودم و عذاب دادم، به خاطر این راجب ملاقاتشون بهم دروغ گفته بود به خودم هم گفتم که خیلی احمقان است این فکر اما نمیتونم با این حس که چیزی بین اونا وجود داره بجنگم. به هی hey بهش پر و بال دادم و هی hey بزرگش کردم بعد از تمام کارهی که اون زن سرش آورد، سر ما تام چه جوری میتونه؟ چطوری حتی میتونه به بودن باهاش فکر کنه؟ یعنی اگه یکی به دوتای ما کنار هم نگاه کنه میبینه مردی رو زمین نیست که اونو به جای من انتخاب بکنه بدونین که حتی بهش فکر کنه اما بعدش فکر میکنم اتفاقا گاهی اوقات پیش میاد نه؟ کسایی که آدم گذشته ای داشته کسایی که اجازه نمیدن آدم بره و هرچی هم که طرف سخت تلاش میکنه نمیتونه خودشو رها کنه نمیتونه خودش آزاد کنه شاید بعد از یه مدت دیگه تلاش نکنه که از دستش خلاص بشه روز پنجم اومدش در زد و هتام رو صدا من عصبانی بودم اما جرئت نکردم در رو باز کنم وجود یه بچه آدمو آسیب پذیر میکنه و میندازدش تو نقطه ضعف اگه خودم تنها بودم جلوش در می مدم. من هیچ مشکلی با سرویس کردنش ندارم اما با وجود ایو نمیتونستم خطر کنم نمیدونستم که چی کار ممکنه بکنه میدونم چرا اومد اون عصبانی شده بود که من با پلیس راجبش حرف زدم شرط میبندم. گریه کنان اومده بود تا به تام بگی که من باید دست از سرش بردارم. یه یادداشت گذاشته. ما نیاز داریم حرف بزنیم. لطفا چه زودتر به من زنگ بزن. مهمه. زیر مهمه سه بار خط کشته که من مستقیم انداختمش تو سطل آشغال. بعد پیداش کردم و بیرونش گشتم و گذاشتمش توی کشوی کنار تختم. کنار پرینت ایمیل بدخاانه‌ای که فرستاده بود و طوری گذاشتم که تمام تماسهاش دیده بشه. تمام های اینترنتی آزاردهنده‌اش. که من که بهشون نیاز پیدا می کنم. به گروهبان ریلی زنگ زدم و یه پیغام گذاشتم و گفتم که ریچل دوباره اینجا بوده. هنوز جوابم نداده. من باید یاداش رو به تام یادآوری کنم. میدونم باید این کارو بکنم اما نمیخوام به خاطر اینکه با پلیس تماس داشتم از خودم دلخورش کنم. بر همین فقط یاد داشت و مینازم تو یه کشو و امیدوار میشم که اون زنه یادش بره. البته یادش نمیره. امشب بهش زنگ میزنه. تا وقتی باش حرف میزنه دود از سرش بالا میشه و تلفنشو قطع میکنه. داد میزنه. راجب کدوم یادداشت داشته کوفتی حرف میزنی؟ من بهش گفتم که انداختمش دور. گفتم نمیدونستم که میخوای بخونیش. فکر کردم میخوای اون از زندگیمون پرتش کنی بیرون همونقدر که من این کارو کردم. چشاش به دوران میافتاد. آه میکشه. موضوع این نیست خودت هم می دونی. البته که می خوام ریچل بره ولی چیزی که نمی خوام تو انجام بدی اینه که شروع کنی به گوش دادن تلفان من و دور انداختن هم تو مثل مثل چی چی چی درست درست همون کاری رو که اون انجام می داد. این یه جور سغلم زدن بود یه ضربه خفیف مسخره است. بغزم ترکید و اشکام سرازی شد. و دویدم بالا تو همون. وایستدم تا بیاد بالا و آرومم کنه. ببوستم و همه مرتب کنه مثل همیشه. اما بعد از حدود نیم ساعت صدام زد که برم بیرون. میخوام چند ساعتی برم ورزشگاه. و قبل از اینکه بتونم جواب بدم شنیدم که در جلو محکم به هم خورد. و حالا خودم رو میبینم که دقیقا دارم همون کاری رو میکنم که اون میکرد. دیشب قبل از شام نیم بود شراب قرمز و تا تهش بالا رفتم. و توی لپتاپش فضولی کردم. فهم اون ساده از وقتی که آدم احساسش درست مثل اون باشه. مثل الان من. دردناک نیست. اما بدگمونی آدم از درون میخوره. بالاخره پسپورتشو میشکنم. بله نیم. چه خیخ و بیمزش که پس فردادم اسم خیابونش باشه هیچ ایمیل بوداری پیدا نکردم نه اکسای هرزه نه نا نامای احساساتی نیم ساعت از وقتم و صرف خوندن ایمیلایی کاری کردم و اون قدر کسل کننده بود که ذهنم رو خواب کرد و درد حسادتم رو کند پس لبتاب رو خاموش کردم و گذاشتمش اون بر. واقعا سر حال اومده بودم از شراب و محتویات خسته کننده کامپیوتر تا ممنونم به خودم اطمینان دادم که خیلی احمق بودم با این فکرام رفتم بالا و دندونامو مسواک زدم نمیخوام بفهمه که دوباره شراب خوردم و بعدش تصمیم گرفتم که تخت رو مرتب کنم و ملافای تمیز روش بندازم یکم از اسپری آکودیو دیپارما رو, رو روی بالشت پاشیدم و اون لباس خواب سیاه ابریشمی رو گذاشتم رو تخت همون که پارسال بر تولدم خریدش وقتی برگرده باش حسابی خودمو براش خوشگل میکنم داشتم ملفار میکشیدم رو تخت که پام گیر کرد به کیف ورزشی تام و سکندری خوردم افتادم زمین کیف سیه زیر تخت بود فراموش کرده بود ببرتش یه ساعت رفته و به خاطرش برنگشته. دلم شور افتاد شد یادش نبوده شاید عصبانی بوده و تصمیم گرفته جای ورزش بره بار شاید تو گنجهی ورزشگاه لباس اضافی داره شاید درست همین حالا با اون رو تخ باشه احساس ضعف میکنم زانو میزنم و توی کیف و میگردم تمام لوازمش اینجاست. شسته و آماده برای رفتن آیپد شافلش قد کفشای ورزشیش با عجله ورداشته شده و یه چیز دیگه یه تلفن همراه تلفنی که من قبلا اصلا ندیده بودمش میشینم رو تخت تلفن تو دستمه قلبم مثل چکش میکوبه میخوام روشنش کنم هیچی نمیتونه جلومو ما بگیره که روشنش نکنم و با این حال مطمئنم وقتی این کارو بکنم از کارم پشیمون میشم چون ممکنه چیز بدی از توش در بیاد آدم نمیتونه یه موبایل یدکی رو توی کیف ورزشیش قایم کنه مگه اینکه چیزی بره پنهان کردن داشته باشه صدای تو سرم میگه بذارش سر جاش و فراموشش کن اما نمیتونم انگشتم و به سختی روی دکمه روشن کردنش فشار میدم و منتظر میشم تا صفحه روشن شه و منتظر میشم و منتظر میشم شارژ نداره آرامش تمام وجودم و پر میکنه مثل اثر مرفین از درد و عذاب خلاص میشم چون چیزی نمیدونم و یه تلفن بدون شاش نه که این یه تلفن استفاده نشده است چیزی که لازمش نداره نه تلفن مردی که درگیره یه ماجرای آشقان است. کسی که بود و نبوده گوشی براش یکسانه شاید یه گوشی قدیمی باشه، شاید ماه که تو کیف ورز شیشه و توی کیف جاش گذاشته، شاید حتی مال اون نباشه، شاید تو ورزشگاه پیداش کرده و برش داشته که بذارتش رو میز و یادش رفته. تختو که فقط نصف ملافشو کشیدم ول میکنم و میرم پایین، توی اتاق نشیمن. میز قهوه خوری دو تا کشو داره که پر از خرد و که به مرور روی هم تلمبار شدن. لوازم چسب، کلیدهای اتصال آداپتور بر سفرهای خارجی، سانتیمتر، خرد و پرتای خیاتی، قدیمی موبایل. هر ستا شارژر رو بر می دارم. بعد دومی رو که امتحان می کنم بهش می خوره. می به پریز کنار تخت. تلفن و شارژ رو پشت میز قایم می کنم. بعدش منتظر میشم قبل از همه تاریخ و زمان. هیچ تاریخی روزا دوشنبه سوم جمعه چه سی. تو بعضی زمان هیچ تماسی نبوده هیچی بدون هیچ تاریخ مشخصی. هیچیز دیگه ای وجود نداره، نه اظهار عشقی نه اشارات روشنی، فقط متن پیاما، یک عالم پیام. همه از شماره پنهان، هیچ اسمی ازش توی لیست تماسا نیست و تماسای برقرار شده پاک شدن. من به تاریخان نیازی ندارم چون تلفن اونا رو ثبت کرده. ملاقات ها به ماه ها قبل برمیگرده به حدود یک سال قبل. وقتی اینو فهمیدم که دیدم اولیشون از سپتامبر پارسال بوده یه توده یه سخت راه گلوم رو بست. سپتامبر ای شش ماه بود. معوز چاق بودم از توش توان افتاده سرد اما بعدش خندم میگیره تو این فکر خیلی مزخرفه نمیتونه حقیقت داشته باشه توی سپتام خیلی شاد و خوشبخت بودیم در عشق به هم دیگه و بچه نور رسیدمون هیچ جوره نمیشد گفت که تام دزدکی با اون بوده به هیچ عنوان اون موقع تام با اون لعنتی نبوده وگرنه من میفهمیدم. این نمیتونه حقیقت داشته باشه. تلفن مال تام نیست. بازم قصد آزار خودم دارم. گوشی رو از روی میز کنار تخت بر و به لیست جاهایی که از این گوشی تماس گرفته شده نگاه میکنم. و آنها رو مقایسه می‌کنم با ملاقات‌های ترتیب داده شده رو تلفن. بعضیشون متنبیقند. بعضی از تماس مال یکی دو روز قبل پیامان، بعضیاشون یکی دو روز بعد پیاما و بعضیاشون اصلا منطبق نیستن. یعنی واقعا تا موقع می دیدتش و موقع میدیدتش؟ به من می گفت که اون زنه وقتی بوده اذیتش کرده، آزارش میداده. یعنی اونا برنامه میریختن تا پشت سر من با هم پنهان قرار بذارن؟ پس چرا اگه شماره این گوشی رو داشت به خط ثابت زعی می زد؟ نه جور در نمیاد. شایدم شاید هم من بفهمم و سعی میکرده بین ما رو شکراب کنه. الان تقریبا دو ساعته که تام رفته دیگه الاناس که هر جا بوده برسه خونه. من تخت رو مرتب میکنم. تلفنو تلفن رو تو کشوی میزه کنار تخت و می پایین. آخرین لیوان شراب و برای خودم می ریزم و سریع می نوشم. می تونستم به اون زن زنگ بزنم. می تونستم با روبرو بشم اما... اما چی باید بگم؟ هیچ زمینه نظری و قیاسی برای من وجود نداره که بخوام بهش تکیه کنم و مطمئن نیستم بتونم لذتی رو که از شنیدن حرفم می تحمل کنم. وقتی بهش بگم که من تمام مدت احمق بودم اگه تام این کارو با تو کرده، بازم این کارو تکرار میکنه. صدای قدمایی رو از پیاده روی بیرون میشنوم و میدونم که اونه. صدای قدماشو میشناسم. لیوان شراب شرابو پرت میکنم تو ظرفشویی و اونجا وای میسم. به پیشخونه آشپزخونه تکیه میدم. از گوشام دود داره میاد بیرون. وقتی میاد تو میگه سلام. باز نگاه میکنه فقط یه ذره تلو تلو میخوره جدیدن تو ورزشگاه آبجو صرف میکنن نه نیشش باز میشه وسایلم و فراموش کردم رفتم بار درست همونجوری که من فکر کرده بودم یا درست همونجوری که اون فکر میکرد من اونجوری فکر میکنم یه ذره نزدیکتر میاد و با یه لبخندی رو لباش میپرسه تو چی کار کردی؟ گناهکار نه نگاه میکنی. دستشو سر میده دور کمرم و منو میکشه نزدیکتر. میتونم بوی آبجو رو از نفسش حس کنم. زیاد خوب نبودی. تام <تصفيق> اینو میگه و دهنمو میبوزه. چشمو میبندم و سعی میکنم به بودن تام با اون فکر نکنم. سعی میکنم به روزای اول فکر کنم به خونه خالی خیابون کرانام. یه بند. خستگی ناپذیر عوضناک. یک شنبه 18 آگوست 2013 صبح زود با وحشت از خواب بیدار میشم هوا هنوز ساریکه. میتونم صدای گریه های ایف رو بشنوم اما وقتی میرم نگاش میکنم اون تو خواب عمیقه پتوشو محکم بین مشتوی بستش چنگ زده برمیگردم رو تخت اما نمیتونم دوباره بخوابم همه ی فکرم رو تلفن توی کشوی کنار تختمه نگاهی به تام میندازم رو دست چپش دراز کشته و سرشو رو انداخته عقب. از رو ریتم تنفسش میتونم بگم خوابش عمیقه از رو تخت سر میخورم پایین. کشه رو باز میکنم و گوشی رو بر میدارم. طبقه پایینم تو آشپزخونه خونه و تو هر دستم یه گوشی. یکیش مال خودمه. هم دلم میخواد سر در بیارم هم نه. میخوام مطمئنشم اما میترسم حدسم درست باشه. روشنش میکنم. با این یکی زنگ میزنم به گوشی خودم صدای خوشامد پیغام صوتی رو میشنوم گوش میدم به صدای منشی خودکار گوشیم آیا دوست دارید پیغام بفرستم تماس رو قطع میکنم اما ناگهان با ترسی غیر منطقی از اینکه نکنه تام از اونجا صدای گوشی رو بشنوه دست و پنجه نرم میکنم برای همین درای کشوی رو باز میکنم و یه قدم میرم بیرون چمن زیرپام مرطوبه هوا سرد و سنگینه. عطر بارون و گل رز تو هواست. میتونم صدای خورناسه کند قطار رو از اون فاصله بشنوم. داره در مسیر درازش توقف میکنه. تا جلوی نرده ها میرم تا از خونه فاصله بگیرم. بعد شماره رو که حالا رو گوشیمه میگیرم. دوست دارم پیغام بفرستم. بله میخوام. یه بوغ و یه مکس و بعدش صداشو میشنوم. صدای اون زنه رو، نه صدای تام سلام منم، پیغام بگذاری قلبم وایی ساده این گوشی تام نیست، مال اونه دوباره از اول سلام منم، پیغام بگذاری این صدای خودشه نمیتونم تکون بخورم نمیتونم نفس بکشم دوباره از اول و بازم راهی گلون بسته شده احساس می میکنم الان که قش کنم چراغ طبقه بالا روشن میشه